سواب و لعمال صفحه نبد و شش از آقامون امام رضا علیه السلام یه قضیه از اسم امام رضا بردم بگم میدونم خوشتون میاد. سه هفته قبل جای بودم یکی از دوستان خوب مشهدیم اومده بود اونجا گفت فلانی من تا حالا این قضیه رو برای شما نگفتم ولی دلم میخواد برات بگم برای خود من اتفاق افتاد این قضیه گفتم چیه؟ گفت نامزد کردم این دوست ما الان هفته هادو خورده سالش من سن نم انقدر نیست من دوستای سنتر از خودم خیلی دارم الحمدلله دوستای سنتر از خودم هم خیلی دارم ایشون هفته هادو خورده سالش گفت سی سالم بود که رو فقر نمیتونستم ازدواج کنم تو سی سالگی خانم عقد ما عبد کردم خورده ای قدر امکانات مالیم به قدری بد بود این آقا روحانی گفت ام امکانات مالیم به قدری بد بود که دو ماه اصلا خونه مادر زنم نرفتم روم نمیشد برم برای اینکه وضعم به گونه ای بود خب حالا این چیکار کنم بعد از دو ماه تو صحن امام بودم مشهد برادر خانمم اتفاقا تو صحن امام به من رسید فلانی مادرم گله کرده گفته اخیشون چراستن رفته آمد نمیکنه چرا نمیاد نکنه میخواد خانمیشو ببره مثلا خیال میکنه ما آمادگی نداریم از ما دلخوره اگه میخوای خانمتو ببری ما آمادهیم گفت منم مثلا یه چیزی که حالیم نشود الان گفتم فقیرم که میخوام خونه برم روم نمیشه یه دفعه گفتم خب باشه اگر هست من بیام مثلاً گفتم خب کی گفتیم روزی معین کردی تو شدش روز دیگه گو خیلی گو خب پس ما آماده ایم شما مقدماتشو فراهم کن بیان خانمتو ببرید گو ایشون رفت من تو سان چشمه من به گمبت بود گفتم یا امام رضا من دیونش شدم عقلمو هیچ حالیم نبود ولی آقا رو بخ یک کاری بکن که من حالا که گفتم سر شش روز من برم زنم و بیارم دیگه سی سالمه تا حالا که تو میدونی صبر کردم گناه نکردم اینا مهمه تو میدونی من گناه نکردم حالا هم رفتم زن گرفتم خب مشکل مالی دارم اینجوری هم شده دیگه آبروی روی من نبر آقا چه بکنم گفت به قدر یه حالم منقلب شد دیدم نمیتونم برم تو حرم برگشتم اومدم رفتم حجره داشتم بشهد رفتم تو حجرم، گفت تو حجره رسیدم دیدم پستچی اومد یه نامه برام آورد آقای فلانی اوتا نامه رو برداشتم باز کردم دیدم تو نامه نوشته میری فلان محله مشهد. فولان آدرس فلان مغازه فلانی این نامه رو بهش میدید. یک قرون او می اون موقع هزینه تاکسیاب بود تا اونجا ده شای برم در شای برگردم در شایاب همسون ایما یادشونه شاید جوابون تررا درش یادشون نباشه. گفت در شای باد میدادم، برم در شای برگردم حقیقتش همینم نداشتم پیادم راه زیاد بود. یکی از رفقا متوجه شد یه قوم من داد. اتوبوس موقع نبود اوششه. حالا اینو بگی برو گوم من گفتم حالا یک قرون ذرهر میکنیم نهایتش ببینیم چیش... چی میشه رفتم به اون آدرس یه آقای پیرمرد نورانی دیدم مشغول کارش بود یه مغازه کوچولو داشت نامه رو دادم تا نامه گرفت گفت میدونی کی داده گفتم نه هیچی نگفت نامه رو بوسید گذاش کنار کناس حالا من یک قرون برام مهم بود یه بسته اسکناس در آورداد به من گفت مبلغ رو بیشتر آقا فرمودن ولی اینو شما ببر آدرستو بده بقیه شما من بعد از ظهر بیارم الان صبح اینجا آماده نیست من پول ازشون گرفتم اومدم رفتم هجرم آدرسم بهش داده بودم بعد از ظهر اومد همون مقدار پول دیگم حالا من ماتو مبخوتم کیه اینم داد به من ما پاشدیم و خریدیم و رفتیم اونجا و خیلی هم با سربلندی پیش خانواده همسرمونو عروسی گرفتیم خودم شب عروسی منبر رفتم و روزه مفصل امام رضا خوندم ولی این ها رو نگفتم خودش به من گفت به کسی تا حالا نگفتم ولی میخوام بهت بگم حالا چرا میخواست بگی نمیدونم گفت اون شب روزه مفصل امام رضا می‌خوندم حالا خودم می‌دونستم این روزه برای چیه این بین خود من و امام رضا بود خانم ما آوردیم بعد از یک سال خدای پسر به ما داد گفت همین پسر فلانی من الان شما می‌شناسید این پسر مریض شد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 دکترم بردم ولی دارو رو دیگه پولم ندارم بخرم خجالت میکشم برم خونه دیدم یه آقای زد پشتم گفت این پول رو گفت من عزت نفسیم داشتم پول از کسی قبول نمیکردم گفتم نخیر آقا من گدا نیسم. گفت این بقیه‌ی همون پول ازدواجی که برات داده بودن او رو از امام رزا تشکر کن و بچه‌ت دارو نخرد دیگه مریض نمیشه گفت پسرم سوال کن از وقتی که یادش میاد شش بعدش من یادمه تا امروز مریض نشده بله آقا اینا همه کاری دستگاه خدا استعمار میخواد ما رو از اینا جدا کنه چرا یا علی میگید؟ چرا یا زهرا میگید؟ چرا نگم؟ خدایی که همه اون کاری که اونا تو دستگاه خدا کردن خدا هر چی به اونا بده جا داره به من و تو میگه عبادت کن ببین چی بد میدم به من و تو میگه خالص بیا تو در خانه من ببین چی بد میدم بحث چند شب ماست اونا چه کردن و خدا چه به اونا داده حالا این امام داره به ما چی میگه ما تقربه امام میگه خدا میگوید ما تقربه الی المتقربون به مثل من خشیتی کسی قرب پیش من پیدا نمیکنه مثل قربی که از خشیت من داره گریه میکنه پیش من یعنی بندهی که از خشیت من گریه میکنه پیش من قربی پیدا میکنه که این قرب را هر جایی نمیتونه پیدا کنه